دست دوم از آیاتی که ما برای خلقت کنونی بهشت و جهنم میتونیم استفاده کنیم در حقیقت آیاتی است که صراحت در مهیا بودن بهشت و جهنم دارن که حالا شما تعبیر اعداد رو که در آیات مشاهده میکنید به ما کمک میکنه مثلا شما آیه 133 سوم سوره مبارکه آل خیلی صریح است و سار او الا مغفرت من ربكم و جنت ارزا هست و الارض او ادتل المتقین اینه که این به برای پریزگاران آماده شده، مهیا شده یا شما در آیه 21 سوری حدید می میبینید که سابق او الا مغفرت من رب و جنت ارزا ها که ارز سماوات و الارض او ادتل لذین آمنو به الله و رسوله که این بهشته برای که افرادی که به خدا و رسولان و او ایمان دارن آماده شده. خب این آیات یا باز همچنان تو آیه 131ش سوره مبارکه علمران آیه 131م مشاهده می‌کنید که می‌فرماید واتق النار التي اعدت للكافرین. این اعدت للكافرین که اینجا اومده اون آتشی که در واقع برای کافران آماده شده. که بس اعداد اینجا آمده است. خدمت شما عرض شود که توی بعض از آیات هم کلمه ععده به کار رفته که میفرماید که وعد لهم جنات تجری تحت الانهار یا وعد لهم عذابن مهینا برای بهشتیان نیکوکاران اون بهشتی که زیر درختاش در واقع آبجاری هست آماده شده برای بدکاران همون عذاب خارکننده در واقع آماده شده آماده کرده است خب خدمت شما عرض شد که اینجا می‌بینیم خداوند بهشت و جهنم را به اعداد توصیف کرده شما وقتی میرید نگاه می‌کنید اهل لغت به اتفاق میگن که اعداد بر وجود بهشت و جهنم دلالت داره اعداد شی در واقع از وجود و ثبوت خبر می‌ده مثلا مثل که شما وقتی به یکی میگید برات قزای را آماده و مهیا کرده آن چیزی که شما میگید به ذهن متبادر میشه چیه؟ وجود تمام دیگه مثلا میگید برای شما آماده کردم اون موقع شما میگید قضا را آماده کردم پیشفرز میشه بعد وجود قضا درسته؟ عدت یعنی حیات. یعنی مهیا شده دیگه ایشون میگه که تو این آیات که کلمه اعداد به کار رفته ها از آماده بودن این دو کانونه و اگر به هنگام نزول وحی وجود نداشت به کار بردن آن نیاز به تحویل دارد و تا موجبی برای تحویل نباشد باید ظاهر را اخص کرد حق اینه که ما باید به ظاهر این آیات پایبند باشیم ببینید من جدا از این بحثه یه دقت نظر بفرمایید تو تمام این 5 تا آیه یه دقت کرده باشید در واقع لفظ ماضی اومده ماضی هم لفظ ماضی برای آینده استفاده شده دلیلم هم در واقع اون چیزی که مفسران میگن خاطر مبالغه در تحقق بهشت جهنم است که این در باب آیات بهشت جهنم این نکته را شما به کررات در آیات قرآن کریم مشاهده می خب ایشون جدا از این مباحث خدمت شما عرض چود که وارد بحث روایات میشه. و من هم فکر می‌کنم آیات دیگه که یه دسته دیگه از آیاتی که آیت الله سبحانی می‌تونن بهش استناد کنن و به نظر ما هم کمک میکرد بحث آیات سوری تکاسر هست آیات پنجم و ششم سوره تکاثر کلا لو تعلمون علم الیقین لترون جهیم. اینه که وقتی میگه اگر شما علم الیقین داشته باشید جهیم رو خواهید دید جهنم رو در واقع خواهید دیدون آتشش رو این دلیل روشنی بر موجود بودن جهیم ها رسه لترون جهیم حالا اینجا عرف های ما میگن آقا دقت کنیم که ملا صدرا به این نکته اشاره کرده جهیم تو باطن ما ها هست باطن همه انسان ها هست اگر ما اهل علم و شدیم جه... جهیم رو خواهیم دید پس ما قبل از اون که جهیم رو در واقع بیمون نشان بدهند باید با چشم یقین با واقع با چشم سر نه با یقین اون رو درک کنیم. بس به نظر من از آیه هم خدمت شما از آیه 56 و سوره تکاثر نیز می شود استفاده کرد. خب حالا جدا از این مباحث شما وقتی میرید مشاهده میکنید تو روایاتمون هم آمده است. شباد روایی داریم که روایت فراوان هست شما اگر خواستید برید آقای علام تهرانی توی کتاب شناسی باز اینجا به تفصیل پرداخته خواستید من ارجاع میدم توی اینترنت هم میتونید کتاب ایشون را در واقع دریافت کنید خدمت شما رسود که تعداد روایات تو این زمینه فراوان هست ایشون نم... به صورت نمونه میبینیم که برای ما ای اشتباه نکنم دو مورد را بردم نه چندین مورد را از میکنم. وقتی مشاهده میکنید تعداد نمونه ها یه دونه روایت از امام رضا علیه السلام هست یه روایت هم از امام صادق هست باز یه روایت دیگه از امام رضا نقل میکنه سر روایت برای ما بردن اون روایتی را هم که ایشون میاره در حقیقت که از اون اخبار رضا ورده توی امالی و توحید هم شما اون رو مشاهده میکنید که خدمت شما عرض شود که روایت اینه که حروی از امام در واقع به امام رضا اینگونه میگه که به امام گفت اینجور نقل کرده که به امام رضا عرض کردم این پسر رسول خدا را از بهشت و جهنم خبر بده که ای آنها امروز آفریده شدند یا خیر امام فرمودند آره خلق شدند و رسول خدا داخل در بهش شد و جهنم را دید در آن وقتی که او را به سوی آسمان به معراج بردن همون آیاتی که توی سوره نجم بهش اشاره کردیم بعد جناب هروی میگه که گفتم جماعتی میگوین آنها امروز در قضا و تقدیر هستند و آفریده نشدن امام با صراحت میفرماید که گویانندگان این سخن از ما نیستند و ما هم از اونها نیستیم کسی که خلقت بهشت اشتا را انکار کند پیامبر و ما را تکثیب کرده و تحت ولایت ما هم قرار نخواهد داشت و تو آتش دوزخ جاودانه خواهد بود این یک روایت یه روایت دیگه ما داریم که خدمت شما شود که جناب صدوق توی صفات ش... کتاب صفات شیعه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که کسی که منکر چهار چیز شد شیعه از شیعهان ما نیست که اینا از میعراج و در واقع سال قبل و خلقت جنت و نار و شفاعت باز روایت دیگی رو ما روایت فراوان داریم روایت دیگی رو ایشون نقل میکنه از امام رضا علیه السلام که نقل شده که فرمونن مومن کسی است که به یک خدا و رجعت و حلال, شده حلال بودن دو متعه همون متعه حج و متعه زنان و میعراج و سال لرقبر و حوز, و حوز کوسر و شفاعت و آفرینش کنونی بهشت و جهنم و بقی موارد در چند مورد دیگه هست ایمان بیارم. خب ببینید اگر بهشت و جهنم خلق نشده بودند طبیعتا این بی معنی بود دیگه درسته؟ وقتی معصومین تأکید دارن نشون میده خلق شده خب ما خدمت شما عرض شود که بعد از این که حالا ادله رو گفتیم که ما میگیم اینجا اغلب اندیشمندان که حالا ما اینجا موارده که بیان شده از امامیه و اشائره حالا ما بگیم که اونها تأکید شدید بر خلق کنونی به و جهنم دارن این وسط شما وقتی نگاه میکنید معتزله به ویژه گروهی از معتزله مثل ابو علی جبایی و جناب قاضی عبدالجبار که وجود کنونی بهشت جهنم را منکر شدن دلایلی رو نقل ذکر کردن که این دلایل هم نقلیست و هم عقلیست یکی از مواردی که مالا تو دلایل نقلی وجود دارد که ایشون آورده بحث اینه که خدمت شما عرض شود ایشون اینگونه میگه که آیات قرانی حاکی از اون که بهشت, بهشت جایگاه دائمی و قرارگاه همیشگی هست که توابیر جنت الخلد و دار رو ما برای بهشت و جهنم مشاهده میکنیم بعد های بهشتی هم دائمی توصیف شده است در حقیقت این بخوایم بگیم از نظر این گروه از معتزله میگن که خلقت بهشت و جهنم با خلود اونها منافات داره که شما وقتی مشاهده میکنید اینه که میفرماید که اوکلها دائمون و ظله ها که اینجا خوردنی ها و سایه های اون جاودانی هست که در باب در های بهشت است ابو هاشم جبائی که از سران است ایشون با استدلال با این چند آیه که هست آیه جنت الخلدی که ما داریم آیه 15 سوره فرقان و دارالخلد آیه بیس هشت سوره فسلت ایشون میگه که ما خدمت شما هر چاید همیشگی بودن به هشت و جهنم را باید امر اجماعی بدونیم اگه بخوایم یک تغریر راحت تری داشته باشیم اینه که بر اساس این آیاتی که ذکر شد به هشت و جهنم از لحظه آفرینش باید جاودانه بمونند و نابودی و هلاکت اونها راه نداره. نابودی و هلاکت اونها راه نداره. در حقیقت بهش و جهنم از لحظه آفرینش باید به صورت یک بنای جاودان و مستمر باشن و دستخوش نابودی و ویرانی نباید بشن. ببینید نکته اینه که ما این است دیگه. نکته این شکلی است که وقتی آخرت می شود طبیعتا چی می شود؟ تمامه اشیا و موجوداتی که در دنیا هستن شما در نظر بگیرید ها چه میدونم دونم دریاها همه اینها چی میشن نابود میشن خب حالا اگر شما دارید میگید که بهش و جهنم آفریده شدن در قرآن توصیف شده که جاودان هستن در حالی که وقتی قیامت کبرا میخواهد محقق شود تمام اشیا باید از بین بره این میشه نقض قرز دیگه چیزی که حالا معتظله بیان کردن این هست یه نکته دیگه هم که معتظله بیان می اینه که آقا ما خلقت بهشت جهنم رو با حلاکت همی موجودات تو روز قیامت می منافات منافعات دارن شما باز ابوها شما جبایی اشاره می کنه که شما بر اساس آیه کلو شیعن حال کن الا وجه آیه هشتاد و هشتمه قصص. هست اگر بهشت و جهنم خلق شده باشن از بین خواهن رفت و ایشون میگه که محاله که بهشت و جهنم وجود داشته باشن به این خاطر که پیش از قیامت عالم در واقع فانی میشه و لازمی این فنا هم محال بودن وجود کنونی بهشت و جهنم هست ببینید یه جورایی جناب آقایی ابو میخواد از تناقض ظاهری میان آیات ذکر شده دیگه یعنی آیاتی که پایداری بهشت و جهنم مثل دوام خوردنی ها و سایه های بهشت اشاره داره عدم آفرینش کنونی بهشت و جهنم را نتیجه بگیره یعنی در اون آیاتی که ما گفتیم بهشت و جهنم جاویدان هست از اون برم هر آنچه ما داریم هر چیزی که هست حالک میشود از بین میرود قبل از قیامت پس طبیعتا از این تناقض ظاهری که تعارض ظاهری که میان این دو دست از آیات هست بخوایم عقلی بس کنیم آیشون میگه این تعارض دیگه تعارض از نوع تعارض حقیقی نه بدوی و ظاهری پس ما نتیجه میگیریم که به و جهنم اکنون آفریده نشده اند طبقی چیزی که ایشون میگن ببینید این تعبیران هم آیتلا سبحانه میگه میگه که اکنون که اکنون با توجه به این دو مطلب باید گفت بهشت و دوزخ آفریده نشدن یعنی قولمون به ویژه ابو آشم جبایی میگه زیرا بر فرض آفرینش باید روز برپای قیامت نابود گردن در حالی که نابودیان ها با جاودانگی اونها ناسازگار هست که تو آیات بیان شد خب آیت الله صبحانی بحثی را که مطرح میکنن خدمت شما عرض شود اینه که آقا بحث که آمده و شی شیع کلو شیعین حال کن الا وجه شیع ماسوالله مراد هست ماسوالله هم در واقع یعنی تمام موجودات امکانی حالا چه دنیوی باشن چه اخروی ببینید اساس میگه استدلال معتظله اینه دیگه میگه ماسوالله گرفتن در حالی که ما میتونیم یه منظر دیگه بگیم بگیم آقا شیعی رو میشه باز جدا از اون بگیم که منظور موجودات دنیاوی هستن نه اخروی چون خود ظاهر آیه را آیه 88 سور قصص می فرمید ولا تد اوم الله الهان آخر لا اله الا هو کلو شیع انحال کنه لا وچه. حتی بعضی گفتن منظور بطه هست که حالا ما بس بطه ها که کنار بگذاریم خدایان دروغین اینها منظور از اون با توجه به سیاقایی می شود اشیا دنیاوی اشعای دنیاوی از بین بیرن حالا اینجا یه تقریر فلسفی هم هست من حالا نمیخوام خیلی وارد بحث بشم که اینقدر طولانی بشه اونم این که آن چیزی که وجود دارد فلسفه ما میگن میگن آقا حالا حلاکت یه هر چیزی که شی تو ذات خودش حالک باشه اونم به خاطر ضعف ممکنال وجود بودنشا دوام بهش تو جهنم وقتی ما نگاه میکنیم اونا باقی هستن منقطع نمیشن انتهایی برای وجود بشت و جهنم نیست که ما زمانی برای عدم اونها لحاظ کنیم اینم با فنائه یک لحظه اونها منافض ندارن برمی خاطر ما میتونیم بگیم که منظور اینه که هر شیعه ممکنه الوجود تو ذات خودش حالک هست یعنی این ممکنال الوجوده رو ما با توجه و واجب الوجود داریم میگیم ببینید وقتی میرین نگاه بکنید فلاسفه میگن میگن آقا اگر شما امور ممکن را در مقایسه با واجب بگیرید طبیعتا همه این هالك هستن خب اینجوری میشن عدم اگر از این منظر ببینیم با این حال بهشت و جهنم باقی و دائمی هستن از بین نمیرن اهل اونم از بین نمیرن هالك تو این آیه در واقع مستلزم فنا نیست بلکه خارج شدن از حیز انتفام مراد هست زمانی هم که مکلفان در واقع فانی شدن به از حیز انتفا خارج میشه دقیق کنیم پس نکتره میشه این مدلی هم گرفت با این حال آن چیزی که ما میتونیم بگیم بگیم آقا این بر اساس سیاق آیه منظور اشیاء دنیوی است شما در حالی که چیز امور جاودان متعلق به چی است؟ امور جاودان متعلق به آخرت دیگه اینجا آیه در مورد امور جاودان بحث نکرده. درسته؟ محل استناد. باز ما میتونیم اگر تقویت کنیم سخن خودمون رو به این آیه ما اندکم فدو و ما الله باق میتونیم استناد کنیم که این آیه در واقع به جاودانگی اون چه نزد خدا هست حکم میکنه روسته؟ و به همین خاطر ما میتونیم بگیم آن چه نزد خدا هست غیر خداست و محکوم به امکان است ولی در این حال طبق مشیت الهی جاودانه میباشد همون بسی که من بهتون گفتم آقا تمام ممکنات در مقایسه با ممکن الوجود ها در مقایسه با واجب الوجود حالک هستند چیزی که فلاسفه میگن با این حال اینجا شعی امور دنیاویست نه امور اخروی چون امور اخروی چیه؟ جاودان هستند اینم تبقه مشیت حق تا حالا جاودانه میباشن پس این کلا شما میگید که خدمت شما هر شود که کوها از متلاشی میشن یا همین پدیده ها متلاشی میشن اینها مربوط به شما دارید به مادیات و در واقع پدیده های مادی بحث می کنید بهشت و جهنم ربطی به پدیده های مادی ندارد اینا جاودان هستند اشیاء اینها توییت امور چی هستن اخروی هستند موجودات اخروی هستند نه موجودات دنیاوی خب این این شکلی ما میتونیم بگیم پاسخی که میتونیم به اینها بدیم این هست ببینید مثلا ایشون میگه قرآن بعض از کتاب ها رو به لفظ حفیظ یعنی نگه دارنه توصیف کرده قد علم ناماتن قسل عرض و منهم و اندنا کتابون حفیظه این آیه در حقیقت تو پاسخ افرادی اومده که انسان انسانها رو بعید میدونستن نگه حالا خدا تو پاسخ میگه که تمام این حوادث در کتابی محفوظه و روز قیامت طبق این کتاب بازگردان نمیشوند خب ما به معتظله میگیم میگیم که آیه ان حال کن الا وجهه شامل این کتاب طبیعتاً نمیشه چرا؟ چون خیلی اصل مسلمه که شما میپذیرید بر اساس ظاهر قرآن این کتاب روز قیامت ملاک احیا انسان ها میباشن. درسته؟ و نابودی اونها با اینکه هنوز وقت بهرهبرداری از اون آغاز نشده حکیمانه نیست دیگه. موجود مجرد نکته که دیگه ما باز میتونیم یه چیز دیگه بگیم موجود مجرد فانی نیست یک بحث دیگه فلسفی میشه گفت موجود مجرد فانی نیست اگر آیه شامل این گروه از موجودات باشد اگر ما بگیم موجودات مجرد فانی میشوند و حالک میشوند اینجا بس فقر ذاتی فنای ذاتی لحاظ است اینجا حاجت و نیاز است یا یه ناس انتمول ولله. درسته؟ اینو یک فوادی دیگه ما پاسخ میدیم پس ما ضعف استدلال معتزله رو این چنین تونستیم پاسخ بدیم یعنی حالک رو بعد برگردنیم شی را بعد برگردونیم به امور دنیاوی نه امور اخروی خدمت شما ارشاد حالا در مورد آیت الله سبحانی در مورد اون نعمت ها هم پاسخ میتونستن تونستن بدن خوراکی های بهشتی خدمت شما هر چه که ما باید به ایشون بگیم اقا به معتظله میتونیم بگیم دوام خوردنی های بهشتی در واقع به عینه ممکن نیست اینا منظور چیه؟ یعنی که دوام یعنی زمانه که یه چیزی از نعمت های بهشت خورده میشه بدل اون به وجود میاد یعنی خدا بتونه مثل اونها رو بیافرینه این با منافاتی و از بین رفتن یک لحظه اونها نداره ببینید الان شهده تبغايات قرآن شهید در بهشت دیگه بهشت برزخی درسته یعنی نشون میده بهشت هست دیگه شهید تو این جنت هست اینم در واقع از رزق و روزی می میشود یا ما ملائکه رو داریم دیگه پیامبران رو داریم ببینید اینها شما الان میگید که این هستی که مطرح میکنید آقا ما میگیم که دوام خوردنی های بهشتی بین به ممکن نیست اما خداوند میتونه رو چکار کنه بدل اون رو به وجود بیاره یه نکته دیگه هم که باز میتونیم بگیم منظور از دوام خوردنی های بیهشتی تجدد پوسته اونهاستا اوکلها دائمون و دلها و امیخاطر بعضی از افراد میگن که منظور دوام خوردنی های بیهشتی پس از داخل شدن مکلفان با اون تو روز قیامت هستا در هر صورت شما هر کار کنید اینه که خیلی ساده ما بگیم اینه که اینها دائمیست و خداوند مشیت تاقتالا مشهیت اقتالا اینه که اونها جاودانه باشن اینها تو امور دنیاوی نیستن خب این دلایل نقلی که اینجا ذکر شد اشکالاتی که هست میریم مباحث را پیرامون خدمت شما هر شد دلایل عقلی منکرانه خلق کنونی به اشت جهنم